بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد درس یکوم را شروع میکنیم از کتاب طلاق در کتاب طلاق هستیم بعد از این که درس در کتاب در نکاح گرفتیم نکاح یعنی ازدواج کردن و جمع شدن بین مرد و زن با عقد شرعی خب این نکاح بود و بعد از این که با هم جور نآمدن یا اینکه با هم ساز نشودن پس شریعت اجازت است طلاق کردن را جدا شدن را اگر و زندگی زن و مرد با هم به جهنم تبدیل که یافت زندگی و دوام دادن زندگی که مثلا نا امکان پذیر که شد پس در این حالت شریعت اجازت است که زن یا اینکه شوهر طلاق بکنه و زن هم طلاق را طلب بکنه و حق داره زن که حتی به مقابل با پول خود را آزاد بکنه خب این هم دلت به این میکنه که شریعت اسلامی شریعت کامل و متكامل هست پوره است و برای مصلحه و خوبی مردم آمدگی هست و به شک در جاهلیت طلاق نبود زیرا اگر اخت طلاق میکرد و بعد از او پیش از که عدهش بود میشد یک بار طلاق میکرد یعنی زن را معلق میگذاشت نه زنی میکرد تا اینکه زنی خوب باشه ختیش مرد خوب باشه و نه طلاقش میداد بالکل تا اینکه جدا شود پس شریعت اسلامی اما شریعت اسلامی پس به دو طریق میتونه زن یا شوهر از همدیگر جدا شود زن یا شوهر از همدیگر جدا شود و کتاب طلاق این هم شک خیلی کتابی مهم است کتابی بزرگ هست در کتاب‌های فقهی عموما کتاب‌های فقهی نماز و روزه و حج زکات و بیع تجارت و طلاق و جهاد و حدود و میراث و ترکات و طریقه ها در حقیقت کتاب‌های فقهی خیلی کتاب‌های بزرگ هست و به شک برای هر یک انسان چه که علامه ابن عبدالبرمه گفت واجب است برای هر شخص که می‌خواهد رو بیاره به کاری از کارها واجب است که باید اول حکم شریعته مطالب به همین موضوع بدونه مطالب به این مسئله. اگر دکان کشادنی هست پس باید حکم شریعت همون درموجی که سودا میکنه میفروشه اگر رفت زنگیره پس باید حکم شریعت بدونه متعلق به نکاح و احکام او پس اگر رفت و طلاق کردنی است پس باید احکام شریعت بدونه که کدا وقت طلاق جایز است کدا وقت تلاقش واقع میشوه کدام تلاق طلاق سنی هست. و کدام طلاق طلاق بدعی و حرام بل و با مسائل شریعت با هم ربط و با هم علاقه داره که باید انسان هر کاری را که انجام دادنی است جایز نیست برای انسان رو را به کاره مگر اینکه اول احکام شریعته متعلق به همون موضوع باید یاد بگیره احکام شریعت اسلامی را خواه تجارت است ها نگاه طلاق است ها حج است جهاد است مهمترین باز جهاد هم همچنین خواه جهاد است هر موضوعی هر احکام شریعت در همه زندگی مسلمان وابسته است، متعلق ربط داره ربط و مربوط به هر یک مسئله است، در خوابیدنش در بیداریش در ازدواج کردن و در نکاحش در طلاقش و در فرزند دار شویش یعنی در حیاتش و در مماتش در مالهاش و در صحتش یعنی شریعت اسلامی هیچ جایی را از انسان مسلمان گذاشتگی نیست مگر اینکه در او امر نهی داره خب اکرون مسئله طلاق بعد از اینکه اصل ن... از نکاح مقصود از مقصود بزرگ از نکاح این وصال همدیگر بود پیوست شدن و دوام یافتن با همدیگر و زندگی را با هم دوام دادن بود لکی وقتی که نشود به تقدیر الهی یا اینکه امکان ناپذیر شد زندگی کردن با هم پس شریعت اجازت داده چیزی را به نام طلاق جدا شدن زن از مرد جدا شدن مرد از زن حتی در قرآن, سور در قرآن کریم سورهی هست نام طلاق خیلی سوره عظیم هست سورهی هست حتی الله سبحانه وتعالی در این سوره بارها عمر بکنه به تقوی زیرا باید ایسان در همه چیز در همه کارهاش باید به با تقوی کار کنه نه همین به تقوی و به پرواگی هست که مردم در بدی ها واقع می شون در سختی ها و در بدبختی ها واقع میشن چرا؟ زیرا تقوی کنه بکن طلاق در باید تقوی باشه بله بلك در سورة طلاق داريس صحفة اوليس الله بارها عمر بكلا با تقوى در سورة طلاق الله سبحانه وتعالى ميغد يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و أحصل واتقوا الله ربكم الله در طلاق ميغد واتقوا الله در طلاق هم تقوى هاس بلي. بل بلك بزرطاني جزي كي بهاد بشاة در طلاق تقولين كي ظلم نكني تقولين كي ظلم نكني زناء و حتی خاطر همین بود که بعضی از سلف گفته شد گفت او کتاب کتابی درباره زهد نمی نویسانی گفتن کتاب تصنیف نمی کنی در باب زهد و تقوا در زهد گفت به تحقیق نیسوندمی گفت کو درباره زهد کتاب نیسونده گفتن چی کتاب گفتن کتاب در بیع بیع ها نویساندم کتابی در بیع تجارت کتاب نویساندم در بیع و خرید و فروش پس گفت همو زهد به شک همین خیلی زهد این دور بودن از حرام، زهد این رغبت داشتن در حلال، ایره میگه زهد، زهد همینه اخی، حلال و حرام رو فهمیدن، حلال حرام رو فهمید تا اینکه دور باشه، حلال زهد چیست؟ زهد البته تسبیحی کلام داشتن و سلحی کلام داشته که نیست، زهد این نه تنها نمازی دراز خوندن و قیام لیل و صیام نهار نیست؟ زهد این اجرای امرهای الله است دور بودن از حرام ها بنابر بعضی سلام گفته شد گویا کتاب در زهد و تقوا نمی نوشانی بلکه گفت کتاب در بیع تجارت در خرید و فروش کتاب نیساندم خرید و فروش های حلال و خرید فروش های حرام هر کی عمل کرد به حلال و هر از حرام دور شد پس او زاهد هست. زاهد همینه همی نمی خب بنا خاطر همین سوره طلاق ده الله امر میکنه بارها و الله ربکم الله میگه ایها النبی ای په یم بار اذا طلقتم النساء اگر رفتو هنگامه سرد د زنhato نه فطلقوهن لعدتهن واتقوا الله و, و فطلقوهن لعدتهن, وأحصل عدة. الله ربكم الله در سوره طلاق امر به تقوا میکنه چرا زیرا این موضوع باید ایسو خیلی و خوف و ترسی از الله داره. طلاق هم جدوشوی که هست، فراقه که هست، پس باید حتما در او تقوی و فرمان الله باید باشه. نباید آدم به احساسات داده متاسفانه بسیاری ها وقتی جدو بشوند در بینشون قیامت می بشوند. دشمنی ها و بدبینی ها بعضی از سلام گفته شد چرا زنده سرمیتی؟ یعنی مثلا برای چی چی عیب داره؟ Кој не може, не би го одолеал за здрави суботки. Мислам, да бараме за да ги одолеаме. Тоа е една од најважните работи во животот. Тоа е една од најважните работи во животот. Тоа е една од најважните работи во животот. Тоа е една од најважните работи во е една од најважните работи во животот. Тоа е една од најважните работи во животот. во животот. بلكي الله мегад وتلك حدود الله Аллах» هاي مرذ هاي الله аст مرذ هاي کشиде الله ва мен يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه الله мега харки حدی الله ра таجاوز کنه تاسو نفس خود را ظلم кардаст ва الله боз мега дар همین аят الله мега до ме يتقی الله یجعل له مخراج дар сураи талақ الله мега до ме يتقی تغلی نگریفت جور نامدن با هم. اگر رفت و طلاق هم که پس باید زن باید از الله بیترسه و با تقواه باشه و حتماً الله او رسک جمعه این مسئله طلاق خاطر مسئله طلاق زیادی ها از شوهره های بینماز و فاسقشان جدا نمیشتون میگن چه زندگی میکنی فرزندار که میخورانه بسیار همین خیلی زن زنهایی هست بومرد هاي فاسق بینماز و اره خر و پیان الکش زندگی داره اگر گوی چرا جدانمیشه میگه فرمانده چی میشوه خاطر امین الله میگه من یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حيث لا يحتسب تشریط علاقات ویرزقه من حيث لا يحتسب الله رزق متا انسان با تقوا را از جای که الله میگه و من يتوکل الله فهو حسبه توكل بأ الله الله کافی والله سوم طلب باز ميگيد ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا والله باز ميگيد همي سوره ومن يتق الله وما يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا معلوم شيء سوره طلاق تقوى طلاق تقوى است كي انسان دار طلاقش اگر خب اكنون ان مساله طلاق است طلاق خيلي مساله پس مختصر سخن از این کتاب فقه مویسر مسئله هایشه می گیریم تا اینکه انسان مسلمان چونه که هر یک با حتی مسئله چی مسائل جهاد باشه چی مسائل اعتقاد باشه چی مسائل فقه باشه هر مسائل باید انسان در علم باید بپروگی نکنه پس باید علمی حکمی الله و رسول را متعلی به این موضوعها باید بشنه و باید به این موضوعها عمل کنه زیرا مؤمن همینه لخیر مسلمان شخص مسلمان در هر محالت بنده الله باید عبودیت و بندگیش تبقی فرمان الله و رسول تبقی شریعت اسلامی پس باید بندگی کنه الله را چی در طلاقش باشه چی در نکاحش باشه چی در جهادش باشه جهاد کردن ضد دشمنای الله ده. چی در مسایل اعتقاد و منهج باشه خب اکنون میگیریم در باب طلاق پس طلاق دو نوع است یعنی جدا شدن بین زن و شوهر دو است گاه جدا شوی از جانبی شوهر است یعنی بازن مناسب نشود یا زنش دوست نداشت یا اینکه عیب در زنش دیده شد پس اینا میگن طلاق کردن حق داره زن شوهر زن طلاق بکنه سر به جدا شو خوب حالت دیوم حالت میشوه که شوهر بازن ساز ولی زن با شوهر جور نمونده است ساز نمیگیره معقولش نیست زندگیش جور نشد پس نوع دیگر جداشوی هست جداشوی دو خیلی یکیش بنامی طلاق هست که را شوهر اجرام مثلا شوهر انجام میتیا ده دستیز شوهر هست خوب دویوم نوع جداشوی هست ایرا نامشا خلع میگویا خلع همو است هستو فقط با پول با عواز با مقابله. مثلا محر من اندی بخشیدمو لیکی مرا همون مهری دادگی تا بار میگردن و مرا سر بطیم. ایمه جدو شد. مرا آزاد کن. ایره بگن خلع. اگر افتو شوهر نسبتی زن محقول لباشه. بلو بشه جدو شوی دخیل. یکی جدو شوی از زانی بی شوهر. شوهر جدو میکنه اخچه ایره بگن طلاق دادن. سر میتن. دویوم زن خود را آزاد میکنه. خود را جدو میکنه. خود را ازی شوهر. ب Авал طلاق, یا ايه که بگем جدا شوی پولکی را ذیکر کرد اول. نگهد, الباب في ف الخلع, در درباب خلع هست. خلع یعنی جدا شوی با پول, در مقابل, با عوض. که زن مثلا خود را جدا میسازه و جدا میکنه از, از شوهری خیش. با شهایت مجبوری نیست. دینید مجبوری نیسته که با این شوهر اگر جور هم نامده, هم که نگرفته, نیاه که دیگه. نیست ки сухт, аку сухт, не е, тари габ неест. Белки хер як сахтиха шаријат, хер як сахтиха ба худ ансаниха дара, хер як дешвориха ба худ тасхилха дара. Бе новори, е месела, кунها е месела хаст. Леки албата ба ахкам шаријат леки. Ба ахкам шаријат, не ба хвайшу хавас. Ба хатир еми шаријат, аз хикмати Аллах и бузорги Аллахамин ес ки талақа дардаси занна چرا؟ زیرا اگر رفت دست زن می شود، هیچگاه با شوهرش ساز نمیگرفت گرفت. شاید پیش از دخول در لیلت دخل مثلا، پیش از همون جوز یکم شاید شوهرش سلاق و خطره همینه الله سبحانه تعالی که دانای مخلوقاش هست، آفرده زن و طبیعت زن می الله. و خطره همینه عجیتی مثلا سادگیش یا ازیتی صبر و تحمل نداشتنش یا عجیتی به بدوبر طلاق را الله در دسته شوهر دادست و اگر از دحلاق حکمت الله همین رفت است که اگر طلاق تلاق دادست زن هم می شاید شوهراشو در این لحظه هم زندگی الله المستعان. خب اکنون باب رو می با باب خلع همین خلع هم را از زنی به زن هست کن در اختیاری شوهر هست می گویم احکامشو ذکر میکنه کنیم خلع یعنی جدا شویه مراد و مقصود اصل از نکاح ای همیشه و دائمی بود کن وقتی با هم ساز نشودن با سببهای با های چی شرعی باشه چی ش زندگی پس اینها میتونند با ها از هم جدا شوند یک کنه نفر را گرفتند ازدواج کردن با کسی اصل همینه که باید دائمی و همیشگی باشه ابدی و همیشگی در سختی ها در سختی زندگی صبر کردن و با هم عرابه زندگی را کشیدن ولی که اگر رفت و طغری پس جایز از جدا شوی خب پولکی باشه بعد داري بولي يوبا ببول بوشا كي طلاقش مبين خوب اكنون مسأله ما ومسأله خلع هست درسي يكن خلع بعد درس ديوم با طلاق في الخلع وهي فيه مسألة تاني المسألة أولى معناه وادلة ومشروعيات يكن مسألة خلع بخلع چي معنى دراء وبچي دليل براي جايز بدني خلع. مجد الخلع لغة مأخوذ من خلع الثوب لأن كل من الزوجين لباس للآخر. خلع داللغات بمعنى يقل خلع الثوب. یعنی بدر کردن لباس که خلع در لغت از خلعا به معنی دور ازالته میگن دور کردن خلع اصله ولی دور کردن میگن یعنی خلع ثوب یعنی لبوسه دور کرد یعنی لبوسه بر آورد لبوسه کشید لان كل من الزوجين لباس الاخر زیرا که هر یک زن و شوهر با هم مثل لباس یک دیگرن با هم خیلی نزدیک بس باید با هم در حقیقت خیلی خوب باشن چنانکه جسم هاشون قالب هاشون قالب هاشون چون که قلب‌هاشون با هم هست پس باید قلب‌هاشون هم با هم باشه اصلا اینا هن لباسه یا شما انتم لباسه یا اونها الله میگه شما برای ها تا مثل لباس هسته که چسپیدگی با هم باید هم خیر باشه در حیات زندگی و اونها برای شما هم چه لباس هست. خب اکنون خلع یعنی همین لباسا بدر بدر کردن بر دور کردن خلع یعنی از معنای ایذالت هست دور کردن خوب این در لغت بود شرعا خلع چی را میگن مگر وشارعاً فرقة تجري بين الزوجين على عوض تدفعه المرأة لزوجها بألفاظ مخصوصة خلع در شريعة جودوشوية هست كيح وقيم شبئي جودوشوية در بين زن شوهر على عوض در مقابل پولة در عوضة بو پولة تدفعه المرأة لزوجها الشزن براي شوهری خود میدی خب خوب معلوم شود مثل مهر که اول داده بود اکنون باید در جداشوی با زن میتی نه همه حالت ده بلکه این حالتوی مخصوص ده هست یا اینکه بعضی. گاهه. خوب معلوم شود که خلع در شریعت جداشوی شوهر از زنش هست در مقابل مال کی میدی این مال را زن برای شوهر جانی خود را میخره. خوب ت... بیالفاظ مخصوصه، با لفظهای مخصوصه، لفظ, های لفظ های مثلا خالع تو کی بیکده، باشه و هرچه مثلا من خیلی ترا کردم، ترا دور کردم، از تو جدا شدم بعض یعنی پلیمیس فرا و بعد از ای جدا با هم یا مثلا فارغ تو تو جدا شدیم، اترا آزاد کردم و اترا مثلا فیض دادم و یا اینکه هر تالفظی تلاق میسپرده برای مثلا وقت تو کی بیکده، ترا سر دادم در دا مقابل مثلا 500 دلار مثلا ایرانوش خلع نمیام خب این جایزه است، بله جایزه است. جایز است که سبب هاش کی شود، یعنی مثلا اگر رفتو شوهر زن باش. مثلا شوهر برای زن محقول نشود و کشیش همکی کرد، پس نشود، پس جایز است که پول را تشکش کنه، زن برای شوهر بیدیه تا اینکه او را طلاق بکنه و از او آزاد شود، خب معلوم شد شرعان چی بودست؟ پولی هست که جداشوی هست که با پول جداشوی، یعنی طلاق پولکی طلاق هست ولی با پول فقط این لفظ طلاق استفاده نمیبره برای برا بک نه داره ولی لفظ ارا خلع میگند در شریعت مشروعیت الخلع اكن آیا همین خلع طلاق یا اینکه جدا شوی جدا شوی با پول با عواز جایز هست مگر الخلع مشروع بل مگر خلع جدا شوی زن با از شوهر در مقابل پولی که زن برای شوهر میده فس اي جائز هست لقوله تعالى الله مجد فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به اللهم يقول فإن خفتم فس اگر شما ترسي ديت اي مؤمنها ألا يقيم حدود الله انك زن شوهر باهم ديگر حد الله را اعمرها الله را اجرا نکنن وانجام ندهن يعني در بين زن شوهر سوز نگیرفتند و این سبب بشه که زن نافرمان برداری و سرکشی از فرمانهای شوهر میکنه و این سبب بشه و معصیت نافرمانی الله الله میگه اگر شما ترسیده که این زن و شوهر با هم ساز نگریفتن و های الله را اجرا کرده نمیتونن فلت جناح علیه پس با نداره برای این زن و شوهر از یک دیگر جدا شوند فيما افتدت به در مقابل همون فدية عوازي زن بروي شوهر مدها معلومة شاء إن خلع فلاكي جدا شدان أز شوهر در حلات مخصوصة بشارت مخصوصة فس إن معلومة بقرآن صبت هست وهم چونين حديث ابن عباس حديثم هست حديث بخاري هست حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت ابن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم Зани ثابت ابن قيس پیشи пејганбар саллаллаху алейхи салам омад رسول الله ثابت ابن قيس ما اعتيب عليه في خلق ولا دين ان ذني ثابت ابن قيس رضي الله عنه پیشи пејганбар саллаллаху алейхи салам омадан гофтан ја расулаллах гофтан ثابت ابن قيس شوهرен ما اعتيب عليه في خلق ولا دين гофтан ираман дар اخلاقш од дар диниш ягом ираду ягом камбуди не мибинам یعنی مثلا گفتن شوهر من ثابت ابن قیز خیلی آدمی دیندار و آدمی با بد اخلاق و بد دین نیست. گفتن یا رسول الله زن آمد. پیش پیامبر صلی الله علیہ وسلم گفتن یا رسول الله شوهر من ثابت ابن قیز آدمی هست که در دینش یا در اخلاقش کمبودی نیست. ارادم نمیگیرم. یعنی مثلا به اخلاق های بگویی نه. دینش هم, دینش هم سازه. فقط گفتن ولكن اکراه الكفره في الإسلام. وله قفتن من نمي خواهن کنم و در اسلام بعد از اینکه مسلمان شد نمي خواهن كي معصیته نوفرمان برداري شوهر کنم. مقصود از جه كفر يعني كفران العشيرش مگان يعني نشکری شوهر. كفر ورزیدن در حق شوهر و کتاهي کردن در حقش يعني من گفتن نمي خواهن در بعدی مسلمان شدم با معصیت کار و گناهکار باشم و با اینکه شوهرم اطاعت نکنم او شوهرم دیندار اخلاقش خوبه لکی به خاطری که من او را دوست نداشتم و به خاطری بد بدیدن سخت بدیدنم نمیخوام قتی زندگی کنم لکی دینش اخلاقش خوبه ها زنهای صحابه هم از اونها میشه رئیسا تعلیم بگیره یعنی مثلا در مثلا نگو که شوهرو شوهرش تهمت نکن بختان نبست جویی نکرد. نکا نگفت آدمی در دین و شده در اخلاق بسیار آدمی خوبه ولی گفت من دوست تر حقت نمیخرم قلب ها را با قلب ها الله سبحانه و تعالی جور میکنه اخی قلب ها در دستی الله سبحانه و هست پس گفت دلی من به همین هیچ نکشید یعنی مثلا دوست نداشتم بلکه بشو بعدش میدید یعنی همین خیلی خب یعنی با خاطر دینش و اخلاق شنو به خاطری خدا همین خودی آفرینیشش دوست ندوش خلاصا این هم احکام شریعت تا اینکه حکم شریعت در این حالت بیان شود که زن با شوهر هیچ ساز نگیرد البته یک یک بار نه بلکه حال شحتش از ذکر میکنیم بعد از اینکه کوشش کرد که ساز شوند کوشش کرد که با هم خوب شود لیکن نشود خب بعد یا رسول الله گفت همین انسان قتی گفت من زندگی کردن نمیخواهم بخاطر کمبودی در دینش یا در اخلاقش نه بلکه همین نه من خود با ایش ساز نگرفته خلاص یعنی سغبد نمیدید بي عذر دوسваме душа فقال النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثار الدين عليه حديقته فقام صلى الله عليه وسلم إذن ربسي تفهمت چند درخت داشت محرد او غو بارش میگردانی اما حديقه گرفتهگی حديقه یعنی چند درخت و يك بوستانه گرفته بدي او را باز باز میگرداني محري داده بودت قالت نعم اذا قبله گفت همون محري كي مالا داده بود فقال الله عليه پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم گفتن ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ گفتن اقبل الحدیقه و طلقها طلیقه گفتن حدیقه همو بوستان و باغ دادگیتا گفت قبول کنو و این زن را گفت یک طلاق کن یک طلاق گفت سرشت خوب حدیث حدیث بخاری اسوا صحیح اسوا ازی گفته میشه که خلع هم بقرآن هست. خلع يعني زن. با قرآن چند چنقدر هر قدری باشه هر چیزی که مهر داده میشد جایز بود پس جایز است که با او خلع کرده شود با هم جدا شود یعنی هر چیزی که مهر حساب شد همون چیز میشوه که فدیه شود فیدیه فی زن برای جدا شدن از شوهر خیش خب این بود آیه و حدیث درباره جایز بودن این مسئله اکنون مسئله دیوم الاحکام المتعلقه بهی و الحکمه می اكو حکم هو کی متالبا میناک چه احکام داره و حکمت از اكو چرا جایز شود همین خلع حکمت ها فويده واش خوب ياش ميگاد احكام الخلع تتخلص احكام الخلع في الآتي أن الخلع جائز لسوء العشرة بين الزوجين ولا يقع إلا بعوض مالي تفرضه الزوجة للزوج خوب خوب يكو ميگاد خلع جائز هست بخاطري خوب ساز نگرفتن بين زن و شوهر بو هم ساز نگرفتن ولا خوب اكميگ ميگيت چي سببها ولا يقع وميگاد إن خلع وقع نميش مگ مگر بعوضي مقابلي مال ب فدي مالي هست كي ش زن براي شوهر خود مديها ديو مجد لا يقوم من غير الزوجه الرشيده لان غير الرشيده لا تملك التصرف لنقص الاهليه دي مجخه زن عاقله و بالغه صادر ميشوه اي ميتوانه خرده كن از نفس هيس اما زن كي فهمش كمش مثلا كم عقل هاش يا كم تصرف مثلاً خوب. أهلي خصوص نادراني. م خ ع الرجل المرراتته مللك المرأته بذ امررا نفسها اگر رفت مرد ز خ را خل کرد خود يع راضی شد به جداوشایی با پول پس مگت داری حالا زن کاری خود در دستی خودش می شود امری نفسش می شود ولا ابقلل ز و جعلها من سلطاني ولا رجت له عليها پس زنگه بلایی سلطنت و سلطانی هیچ چیز نداره و همتونین باز گردان نمیتونن زیرا خلعکی راضی شد به پولا کی گرفت پس این زن از او یا طلاق می شود. طلاق. یعنی جدا می شود. طلاق باینش اینش میگم با. طلاق باین با یعنی طلاق که جدا شویه هست. پلی جدا می شود. و بگو خود به خود رجوع کنن نه. بلکه احتیاج به نکاحی نو داره و به رازیگی زن. اگر از با شد به پس جاییز است. قوم علوش شرطش همین است. یکم شرط یعنی که نکاح نکاحی صحیح باشه. خلاصه شرطش هم якко баја никох никој сахиб боше значи аз ки хлу сајмеше аз ки никој сахид дошта боше никој фасит ки боше дига ехтедж ба хлу недора валки никој фасит батил е батил ки боше дига ехтедж ба талак хлу ам недора хлу значи чудоше ба пул дием хами ки боат хеди жен хлу аз дасти хеди шохар или ки вакили ки касе ки жојнишни шохар е е و هرچی باید شوهر راضی باشه راضی و باید چی ایجاب و قبول شوه یعنی مثلا مثلا میگه مثلا صورتی مسئله شمی کی زنه با شوهر ساز نگیرفت به خاطر دین این شوهر یعنی کم دینیش فوسقیش یا با خاطر مثلا اخلاقش بعد اخلاقیش خاص جدا شود. پس با شوهر مصلحت میکنن ده مقابل پول خو یعنی مهرش بشه یا کمتر علی ذکر میکنین پس او پولا میتیا و از ای شوهر امو بختی که پول داد پرداخل کرد فمیقتی جدا میشه و یا طلاق واقع میشه تا گوه فسخش مگن یعنی نیکارشون بکار میشه راجی حمین اینکی خلع فسخه، فسخه یعنی چی بکار شدن نیکارشون نيكاشو. بکار میشه و این زن گویا یک حیز عده میبینه یک حیز و بعد از این ایتانه شوهری نو کنه خوب موالیف مگد لا يح... لا یلحق المخالیعة طلاق او او ظهار او الاء اثناء عدتها من زوجها الذي خالعها لانها تصير اجنبيه عن زوجها خبزنه کیکنو خردرو خلع کردو خلع یعنی جدا کرد با پول یعنی اختا ازات کرد اختش خداش ازات کرد زانکی آزاد کرد با پول طلاق كنا زيهار كنا زيهار. ما گفته قسم در اسنای عده از همون شوهرش که جدا کرد از او جدا شد خلاص کلون هیچ چیز دیگه واقع نمیشه این زن به همین مگل انا تصل اجنبیه در این حالت این زن بیگانه حساب میشود. بعد پولا دادم بعد رازیگیش و پولا که گرفت و گفت که تورا خلع کردم یعنی آزادت کردم پس از جدا شده اینوای به مقابل سیا با پول یا سیاست هر دادم به پول در این حالت به همین آزادی آزاد میشه این و این زن،, ای زن, زن بیگانه میشوه دیگر این برای ایل یک بایدگه احتیاج به با چی احتیاج به نکاح نو و روزی گیزن و مهر نو خوب پنجه حکم دا مگد یجوز خلع فی الحيض و طهر الادی جامعه فيه. فیهی خلع یعنی خلع جدا شایی با پول یا از طلاق بعض احکامش فرمکنه دلقات یکی شمی که جویز از خلع کردنی زن در حالت حیزم که باشه جویزه در حالت حیزم خوچه پول بتیه آزاد کنه یا در طهری در پاک بودن از حیضی که با او خوبگی کرده است جمع کرده با او دائم معلومه معلومش که خلع بدعی و سنی نداره اینکه پولاد میتونه قژا زات کنه از نکاح از گردنش بر داره لعدم ضرر علیها فی ذلك فإن الله سبحانه و تعالی اطلقه ولم يقيده بزمن دون زمن و الله سبحانه و تعالی مطلقاً ذکر کرد و نگفت کی ده کدام زمان یا ده زمان نکنه پس معلومش خلع hamesha wa hada waqt jais ast kayki bosha miswa khoda halat hayz bidat talaq jais ast za halat hayz za halati poki ki baz shohar sham khobay karda ast talaq jais nit talaq bidayesh miganaram haram walakin khul' jais ast khul' da khodar hayz osha khodar tahri ki qaq shuda gi akobay kelgas vojudi jais za da bir zarar خب اگر افتخیر که بشه پس میتوننه چې شوهر شو زنش غم بتا غم بتا تو بتا زن شغم و تغم بده تا انکه مهری دوتګشه یا کی زیاتره پول طلب کنه نه حرامه به راغه مګر حرام علی الرجل حرام است برای مرګ انکه آزار به یا زن خود را آزارش بده غمش بده یا حق هوشه مان کنه تا انکه مجبورش کنه که چې با پول بخره مثلا چې با پول آزاد کنه حرامه حرام است یعنی حرامه برای زن برای شوهر حرام ایدا برای شوهر یکی چیزی از شوهرش بگیره از زنش بگیره مجبورش کنه تا اینکه همون مهر برگردونه نه بلکه در حالتی که شوهر گناهکار باشه یعنی به با این معنی که عیب از جانب شوهر کی باشه پس در این حالت چی در عیب از روی شوهر باشه یا اینکه مثلا شوهر در زن محقول نشد پس جایز است که چیکو کنه پس جایز از با از هم جدا شود لقوله تعالى ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتمهن الا ان ياتينا بفاحشه مبينه الله مگد ومعنى كن زنه را اسوهر کرده الله مگد ولا تعذلوهن يعني بزنه فشار نه اوره فشار بولا شونده تا انكي بعض همون مهر كي دده بيگیره الله مگد مگد نه زنه را آزور نه فشار شون نه ياره مجبور شون مگر اینکی گناهی بدی کردن مثل زینای دو فارم برداری زنی بدی بود زنی های، پس از این حال اگر نداره کرکامش بتی تو اینکی ام مهر تبکه دن او سرش بتی، یعنی با کردنه با خلو کردن اجازت بتی. خلاصه در اینجا معلوم شد که حرام وی برای شهاد اینکی چیزی از زن بگیره وقتی که عیب خودش بوده یا اینکی خودش میخواست باشه طلاقش کنه و میخواهد که زنش سر بتا لکی غمیتا تو اینکی بگیره باسرش بده و همچنی حرام ای با شوهر اینکه زن شد ضرار برساند، آزار بطه، تا اینکه بعضی از حقاشا بگیره. اللہ مگد ولاتون سی که نه درار لی تعتدو، شوه زنها تو نه مگد نه قفه تا اینکه با او ضرار برساند، نه زن از نرسن یا اینکه بازن چایی که اللہ مگد تا به معروف بمعروف او تصریحون بحسن، یا بازن خوش زندگی که خوبی و نکویی با عاد، يا ياي إنك بأضلنا سرج بتبخوبي الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى مجد فيمساككم بمعروفين أو تصريحون بإحسان نمجي قلبه دس مؤلف هامش المجد يكره للمرأة مكروهس برايزان يكره للمرأة مكروهس برايزان يكره للمرأة ويحظر عليها مخالعة زوجها مع استقامت الحال و دون سبب اقتضی این مسئله خیلی مسئله مهمه ایک کنون مکروه هست برای زن بلکه حرامه برای زن این از شوهر خود با پول جدا شوه در حاله که شوهرش عدم خوبه و یکام سبب عذر شرعی نباشه در حالت طلب کردن حرامه طلاق طلب کردن طلاق يخلع بعذر شرعي حراما قنوة كبيرة حص حديث تلميزة فيامبر صلى الله عليه وسلم قال: أيها امرأة مسألة خلا مهمة أيها امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة فيامبر صلى الله عليه وسلم قال: يقول حرزنكي الشوهري خود طلاق بفرصة بيقوم عذر شرعي يقول كامبودين أدرا يقول مثلا خيك يو كامبودين أودية سخير Баами, мала талабете, мала сарбете, мажи дубиша, параме. Фијабарл може да е парамен на неа, раишта на јенна, бој јенат бараш параме. Псор го ние кебираш, талак, прусидал да, нарика од майда, шо и да, параме. Го ние кебираш. И охам чиним бапулам талакар, дали неш параме? Ја ние бегаме, анди пул од неја е тоа, еднословно, параме. Ајде разговаруваше со ان المغتليات هن المنافقات عمو زن های کی خلع میکنن ش... از شوہر های خود خود را آزاد میکنن با پول سبوک دوش میکنه خودشان را با پول ال... پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت هن این زن های منافقه هست به خاطر همین جدا شدن زن به عذر شرعی یا طلب کردن طلاق یا خلع خلع کی فهمیدم دیگه دیگه ها را خدا در حالاتی ضرورت جایز است خلع به راخر مؤلف میگه بی عذر شرعی باشه ممنوع است حرام است بی عذر شرعی زن طلاق شوهرش طلبیو طلاق. کی بگه مساله میده یا روزی زن بخره مساله کی شوهرش کیگه وقت قتی سوز گم نزد بگه من را سربته حرام طلب طلاق, طلاق. یا عادت کردن طلب کردن طلاق بعضی عادت کرد بعض هم یک چشید نشد تمام با طلاق کنه بگه اگر فلان تلفن رو بخری نخریش طلاقم بده حرام است دی ایو، هذه صحیح است. بوی جننت نه و یا اینکه با پول خود را آزاد کنه. پس این هم از منافقی است. خب، میگه حرام است برای زن اینکه خود را از شوهر سبوک دوش کنه، آزاد کنه، با پول یعنی جدوا کنه در حالی که یگام سبب شرعی نیست. اما اگر علت سبب شرعی باشه که ایکون زوج معيبا فی خلقه، هی. مثل اینکه شوهر عیب داره در آفرینیشش، خود این خیلی بدروه. یعنی خیلی بزید. یا آدمی هست که در آفرینشش خطی داره مثلا این مثلا خلقش یعنی در آفرینشش این اگر زن صبر کنه با شوهرش با این خوبه لیکن اگر صبر نکرد جایز استای حالتایی که جایزیده میگویم واجبه نیو جایز مثلا شوهرش یکم بیماری های سخت داره که با او زندگی دشواره این حالت جایزه یعنی این حالت‌ها جایزه است ولن توتق المرأه البقاء مع نتونس کی دیگه با این شوهر خیلی بدروی بده یعنه زشت قبیح شکلش ده. الله هم توفرده. یا اینکه مثلا انوالیت است. انوالیت یعنه مثلا لنگی خیلی حال بد دار. یا اینکه مثلا کور است یا اینکه کر است. مثلا نشتقتی زندگی کرده. پس جایزه که خلع کنه. یعنه مثلا جایزه. جایزه یعنه چه اگر سابق نه بسه خوب. نه که اگر رفت نه که جایزه. حق داره او كنا سيئا في خلق يا ادم بعد اخلاق بود ادم بعد زن جویز است که از شوهرش تا مثلا خلع کنه چا آزاد کنه لیکی با میگون سبحان الله ستاهم زن بشرت ای که اصلاح شدنی نباشه اول نصیحت کنه شوهرشه یعنی بسیار آدمی تیزی بده است تیزی یعنی تحمل کرده نمیشه بشه خیلی قیمه برای وقت شریع اجازه داده گیده ده فطوی علیوه ده است زنی که بس بسیار شوهر ای که بسیار غضب کننده های. او برای јам талак дар се вијанте талак хамикнем талак хамик ки изнан би сеор зени бадае бехили гандеи шудани не е хак талак дадеси зени шавхар е кеј кхва меслене ми гаде талак кам чи бе бе پس پول دوده میتونه چه آزاد کنه ای میگم بازوری و یا یعنی با پول خوب اكنون اگه اکن چی صفات های شوهر داشته باشه الله تعالی رحمه کنه چی صفات های بدی داشته باشه شوهر میتونه زن جدا شوه یکیش بسیار تیز غضب آلو بو باشه یعنی از حد زیاده. یعنی هر یک کوره غضب بگیر هر یک کوره سرزنش بکنه هر یک کوره یعنی بشاتگی امکاناتش شده بشا ایتری مثلا در غلط ادم اذا هم عصبی از ای زمان لیکن یعنی فوق معتاد است یعنی از عادت زیادتر یعنی تحمل نکوننده است یعنی امکان نداره که این مرد بسیار غضبکنک فسیخ مثلا عصبی زینه کردن قینه دهی حالت‌ها جایز است یا اینکه یعنی ده کمترین چیز طعنه یا مثلا ده کمترین چیز میسردنش میکنه ده حد شوره درقت یعنی بعضی خونه ها الله تاناته مثل زندان یومسی جهنمای خوب بیا اینکه مثلا در دین شوهر کمبودی باشه برقم گفت او در دینش ده در دینش مثل تاریک بینماز گه میخونه گه نمیخونه در فسیق میگه ای شوهر جایز است که هم طلاق طلب کنه گنا گنا میسوا یو این که راضی نشود سر را پس در این حالت چیکو کنه پس در این حالت به همه پول خودش آزاد کنه و پول خلوش میگه امی خلوه کم دینه نقص الدینه یعنی گاه میخونا, گاه نماز نماز نماز. ها, کی گاه نماز می خونه گاه نماز نمی خونه با قال بزریم ها کی نماز تکا کافر کافیل اوی کی قور راجحه من است که گاهی گاه نخونه گاهی نخ بخونه گاهی نخونه کافر نیست و مبنی بر این با این زنده با درست نیست یا آدمی ترک جماعت ها میکنه نماز جماعت دی. مسید نماز؟ نماز؟ نماز؟ نماز؟ دعوت در مسجد نمی شناوه و روا نصاحت کرد فهموندش دعوتش کرد باوجود گپ نه در این حال است از این خیر شوهر جدا شود یا اینکه مثلا محرمات انجام میده عرق نوشه یا کار است یا دخترباز های این هم جویز نیست با این نو اگر افتو اصلاح نمی شده باشه نسی اللہ العافیه و سلامه به هر حال این نو همین عذرهای هست که جویز از برای زن خدشش را با پول از این شویر نخلاف جدا کنه به شرطی کیچی چی؟ به همین شرطها با به شرط باز میگم نصیحت فهماندن اقام حجات صبر کردن تحمل کردن زندگی بیشک خود کمبودي ها داره بلندی و پستی ها داره حمید بدینی شاو میخه مثلا کم دینیش شد ضعیفی ایموشا میخه حقیقتا ساحت کنه که فهمونه ان امیده کی اصلاح شوه خب یا اینکه شوهر زن حق حق زن اجرا نکنه نفقهش نتیه جویزه خودش یا طلاق طلب کنه یا کی خلع کنه یا اینکه مثلا معاشرهی زوجی ده مساله مطالبه خودداری کنه بگم من јоиза се. Да, сите палат ако знате, а шавари ја талак талак талак талаб кине, јоиза. Ако афто не мијте, бад јоиза е што би фол хчеше што кине, оди шавар, дуркна, оди шавар, озот кине. Еве бод палато е да. Хоб. Ако афто шавари фасик баша, боже, мислаа токрал ни муви мами дуњиода, зидлеги кине, не галата. به تقوی یا به توفیق گوییم، یعنی مثلا کسانی که کنه هم اکرامی عرق نوش است یا این که مثلا زیناکار های، یعنی سبر کرده میگه زندگی مهم زندگی ساز باشه نی غلطه، این مردی فاسق پدری خوب شده نمیتونه برای فرزندات در آینده خب با چخیل کنیم زندگی را چخیل پیش بریم، تقوی کنیم، انشاءالله سبتاله زندگی تا زنی صالحات تقوی کنیم، الله رسکش میتیم حتما. پس فرض یا بهترین قایده همینه که چیز زنی بد باشه چیز شوهر بد قایده همینه که فرض که کی مرد چکارو میکنی همه کارای هازی بکر شوهر مدیم پل یا اینکه نفقه خوب میتواله که به نمازه. نه دیگه خوبی نداره در حق الله وقتی که کمبودی داره پس این خوب حساب نمیشه این نمازه زینکاره دختبازه یا اینکه از جماعت های نماز نمازی جماعتها دور دوری میجوی على كل حال میس امین نصیحت برای زن های صالحه در زیر مرد های فاسقه همین شوهرت مرد چیکار میکنی همو کار از از شوهرت مرد الله رسمتا ها تم از از هم فکر کی شوهرت مرد شوهرت مرد پس از از هم فکر خاطر الله وقتی تر کردی الله سبحانه بهتر حتما خوب او خافت اللا تقیم حدود الله یازدن ترسید که فرمان الله را اجرا کرده نمیتونه در اطاعت شوهر یعنی با شوهر هیچ دوست نمیدارش کش اکید دوست نمیداره این کلمه عادی نیسته که مثلا اکیم بر برو دوست نداشت تمام خطاب گمه سر بتم نی بلکه دوست نمیداره یعنی کشش کرد که دوستش بوداره سال یکم دوست نداشت فرزن فرزندارم یعنی هیچ جور نگرید با ه در دل همین مرد در دل شوهر یا که عکس گوییم مرد در دلش زن داخل نشود همین مثل همین حالت خوب اخ اک معلوم شد که دوست نداشت به این معنی که دیگه اطاعت نمیکنه اخی اطاعت کی نو فرمون مورد داری ماسیات الله را میکنه اخی واجب برای زن شوهر شوهرش اطاعت کنه خوبه که دوست کی ندوز اطاعت نمیکنه اطاعت کی, نمی کی نکرد تناگر بشه مثلا به حقو باگی دعواش کرد نگفت ملائکه لعنت میکنن یکم مثلا یکم کورش فرمون دوست کی نا ميدان نگوف میژا گناگو بیر واخوت دامی حل سیاست کرن هیچ کی دوست ندوشه کوم نه میگوم کی با هم رمانتیکی زندگی کنن یعنی عاشق معشوق یا دیگر محب محبوب یا دیگر نه مثلا همون قیبوشه که زندگی شون با هم رفتن بگیره اگر رفت این خل باشه یم نداره نه هر زندگی با حب و دوستاری بنیا میشوه بنیاد میشوه گه زندگی ها با خاطر فرزند زندگی میکنی چه چو فرزند داری از این مرد یا گه به خاطر یدم خوبه یو لیک یدم سیفات يعني خشونيستا، اكتبه صالحا، اكتبه تقوه هست، اهل ايمان و اهل عقدي سعي هست، موحيد سننى هست، هست مثل اي را بدروگيش اهميهد ناته خوب اكتبه نسأله آخران ما قد الحكمة من مشروعية الخلع، حكمات از جائز شدن همين خلع بفلخ جزان جدو كنا، كي شراها من الله اجازت داد، حكمات اشتيست، خاصيات اشتيست، ما من المعلوم ان الزواج ترابط بين الزوجين وتعاشر بالمعروف، ما قد معلومة ايكي نکاح کردن این رابطه بین زن و شوهر است و زندگی کردن با هم هست خوب زندگی کردنه زیرا زن الله میگه و من آیته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بينكم موده و اصل اسلمینه یکی از نشانه های بزرگی الله همین است که از خود شما برای شما همسر قرار داد است تا اینکه با اونها سکونت و استقرار و آرامش بگیره جعل بینکم موده و رحمه واربين شما دوستي و مهر و محبت قرار داد است اصل با هم دوست بوداری با بو هم زندگی کنیم فهذه ثمره النكاح ان مي و نكاح ازدواج همینه میواش همینه فالا لم يتحقق هذا المعنى اقر ان مي تحقق پیدا نکرد فلم توجد الموده من الطرفين او لم توجد من الزوج وحده ينك مثلا دوستی از دو طرف نشود با هم نفرت پیدا شود نفرتی مردی که خوبه لیکن با وجود دوست نمیده یا زنی خوبه او توجت من زوجی وحده یا اینکه از طرفش شوهر نشود. یعنی شوهر دوست نده عکس فساعت العشدات و زندگی بد شد و علاج و معالجه کردن تبابت کردن اصلاح کردن نممکن شد تعسر دشوار شد که با هم جور بگیرن با هم اصلاح شون، با هم خوب شون. فا خوب اکن یک دیگر دوست نداشتن چی میشوه مگر یک دو حالت داره اگه جتی شوهر باشه زن زنش دوست نداشت فین الزوج مأمور به تسریح الزوجیه به احسان پس در این حالت زن شوهر اگه شوهر دوست زن زنش هیچ دوست نداشت در حالت امر شده که از زنش آزاد شوه با طلاق اینا میگن طلاق شوهر که باشه میگه طلاقش کردم رفت اگه زن باشه چی میگوییم موزی؟ زیرا الله میگه فامسکون بمعروف او تسریح به احسان پس میگه الله میگه یو نگاه داشتنی زن به نکویی که زنش که با زنی قتیش خوب باش چیزای میخواد مثلا حق ز... زن ز... شوهری را براش اجرا که اگه دوست که نداشت معلوم که حقای حق زن پیمال میکنه اخی برای ق الله میگه فهمسک و معروف یا نگاه داشتنی با خوبی هست به نیکی با عادلانه قتی زندگی او تصریح به یا راهوش که جدا شه از او با خوبی و با به نیکی خب اکنون اینجا از طرف شو... شوهر زنش دوست نداشت با زنش ساز نگرفت خوب کوشش کرد نشد. پس در این حالات چی میکنه؟ سرش میاد طلاق میکنه. فا اذا وجودتی الوحب محبت من جانب, جانب زوجی دون زوجتی اکو محبت دوست داری از طرف شوهر هست. شوهر عاشقیو. لیکن زن هیچ مئله نداره. بینکه کری هد خلق زوجی ها با اینکه اخلاق شوهر شا بد دید او کری نقص دینی یا کم دینی شا بد دید. کم و بی و ه او المحبه خوب او خافت اسمن بترك حق يا ترسكي حق سي اجرا نميكنه يعني مثلا بوي شوهر امكن نداره كي مثلا زني خوب شوا زني مطيع فرمانبردار باشه فانه في هذه الحاله يباح للمراه طلب فراقه عن عوض تبذله له هذا مثلي حالات بس كه زن چي كور ميكنه جواز است كي طلب كنه جودا شوي از در مقابل پول وتفتدي بها نفسها ونفس خضر ازاد میکنه لقول تعالى فإن خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به اللهم راجا ترسیده کی حدی الله را اجرا کرده نتونید بین تون ایزن و شوهر پس بکنده در که از یک دیگر جدا شوی با فدیه در مقابل عوضی کی زن برای شوهر میدها خب این بود احکام خلع معلومه شو خلع جدا شوی هستو فقط با پول جدا شوی در مقابل مال خب اکبر این پول چند قدره چن قدری باشه جایز است هر قدر مهر دادن جایز بود پس هر مورا بمیشه کی پول به به همون دادگیره، را به برگردونه فقط علمو میگه اولا و افضل همینه که کی همون خلع یعنی پولی که طلب میکنه به مثل مهر باشه و ازو زیاد نباشه زیرا د همه حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم این زن گفتن آیا گفتن همون باغی که به تو داده برش میگردانی و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن اقبل الحدیقه ثابت ابن قیس گفتن همو باگی که هم زن ته از هم ربت او و قبول که حدیقره یعنی باغ قبول که و سرش بده یک طلاق حتی یاری روایت که دمت کی ولا یزد ایو زیاد نک یی حدیث روایت هم یعنی چنا مهری گرفتگی لیکن این عالم ما میگن مستحبی است یعنی معلومه چا خلاصا چنقدر پول میتی ازن تو یک از شوهر جدا شو هر قدری باشه خو چنی مهر است خو از مهرش کمن یا این که از مهر زیاد جایز است بله فقط مکروه است که از مهر زیاد باشه لیکن جایز است که از مهر زیاد باشه فقط عالم ما مکروهای مکروهایی که از مهر دادگی زیاد ثالاب طلب زیرا که اگر علم مزه بی حمله‌ای ها, ها دم میگن جایزه. زیرا که شاید میگن او وقتی مهر داد بود عزام بود اخی. محرش مهرش مسالم صد دلار داده بود زمانی قدیم. از بس صد دلار که نگذانگیست نمیشه مثلا خب بلا خوته همین راج همین است که فقط اولو افضل بهتر همین است که چنین مهری چنین مهری دادگیش بشه. لیکن جایزه از او کم بشه و جایزه که از او زیاد باشه خوب زن با شوهر با, با اگر رفت و زنی از شوهری خود با پول جدا شد خوش آزاد کرد پس در این حالت ایده میگوند طلاقش با این شده جدا شدگه است و جاییز است با هم از سری نو باز بگردن لیکن برازگی زن و به عقد نو به محری نو خب چند قعدده میپاید زنی هم خیلی آزاد شدگی زنی آزاد شدگی با پول یعنی خود را طلاق طلب کردگی و جدا شدگه از شوهر به پوله این یک حائز بپویا، یک حائز. زیر حدیثی میکنه. را را حیز با آخری واد میکنن رابیع بنتی معوض پیامبر صلی الله علیه و سلم آمرش کثیه حائز بپویا، یه حائز بپویا. اگر رفت و حامل نباشه این وای، حاضری حالت میتونه شوهر کنه. معلومه شو که زنی که با پول جدا شده، گر خلع یعنی زنی مخالعش میکنه. مخالع یعنی خود را با پول خلع کرد جداتش کر. و هری خود ازاط کرد. خو؟ آیا همین نام ازاط شوا تلخی، تلخی سبز؟ رواج حمینه اینه خلع فسخ نکاح است یعنی نکاح نیکاحیو لکی طلاق نیست از طلاق هم می‌سوند نمی‌شود یعنی یک زن از شوهری خود اگر ده بارم پول خاتی جدا شو طلاق نیسته کی بلکه همون سه طلاق که در گردن یک زن شده اوی بکمیمونه یعنی طلاقش کم نمی‌شود اگر صد بارم از شوهرش با پول جدا شو هالی سه طلاق حق داره راجح حمین است رواج حمین است کی خلع صحيح حمین است کی خلع یعنی جدو با پول این طلاق نیست طلاقاش هم کم نمیشه هم سته طلاق حق استدگی چم باره کی طلاق کنه مثلا جدو شاده خلع کنه با هم اتفاق کردن جدو شدن باب شیمون شید زن با دوباره گرفتن حق داره چم باره کی باشه طلاقش کم نمیشه زیرا الله ده طلاق میگه الطلاق مرتان پس طلاق دو باید بار است و ده بین خلع ازی میگه بس این بار میگه سوم کی واقع شد پس جایز که حتی شوهر دیگه کنه به هر حال معلش سوال مختصر همین که خلع این یعنی جدوشوی زن از شوهر خیش با پول این فسخو و بیکار کردن نکاحه ولی کن از طلاق حساب نمیشه به با رب 10 بار هم خلع کرد حق داره ب میتونه با بگیرش خب او کو با, با, با مساله آیا خلع به طلاقم آیا طلاق حساب نیست راجح همین که نه اختلاف بین علماتا که اگر حتی گفت من طلاق کردم گو با 100 دلار یا با 500 دلاری که مرا بیتی حتا همین را میگن طلاق حساب نمیشه بقي خل عص خو بحره وبينه على مختلفه زي مثلاً آخر وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.